به نام خداوند آرامش و کارسار به دوازدهمین روایت خیش از شاخنامه ابرمرد حماسه و ادب و فرهنگ ایران فردوسی رسیدید یکی از بلند بالاترین تارک های حماسه بشری به اوج سوگ در شاهنامه به اوج درماندگی و درد و رنج بشری او چه و کجمداری و سخت دلی سر به حکایتی از شاهنامی فردوسی که قرن ها به چشم ایرانیان اشک آورده است آنها را در اندیشه فرو برده است به حیرت درفکنده است و برای ها این هشدار و پند همچگی را به همراه داشته است که انسان هوشیار باش و خرد به که روزگار و تقدیر و سرنوشت در چنته خود هزار نیرنگ و پرید آماده دارد من این روایت را به پدران ایرانی پیشکش می کنم به مردانی که با همه توش و توان خود دار و ندار و کم و بیش جان و مال و حسگرخیش را نسار فرزندانشان می کنند هموطن شما سعید قائم مقامی در روایت پیشین برایتان گفتم به روزگار پادشاهی که کاووس رستم دلیر در یکی از ایرانگردی‌هایش رقش را گم کرده به پادشاهی سمنگان می‌رسد و در آنجا برای نخستین بار طعمه عشق را می‌چشد و تخمینه دختر پادشاه سمنگان از او باردار می‌شود خداوند به تحمیم پسری می دهد که او را سخراب نام می‌گذارد. کودکی شگفت که در نوجوانی مردی دلیر و قوی پنجه گشته است برایتان گفتم سخراب چون پی می‌برد. پدرش رستم پخلوان دلیر ایرانی است بران می شود با سپاهیانی که از افراسیاب وام گرفته به ایران گرش برد که کاووس را از تخت پادشاهی ایران به زیر کشیده در را یافته به جای او بر تخت بنشاند. برای گفتم سخراب در نخستین برخورد با ایرانیان خوشیر دلاور ایرانی و فرمانده دز سپید را به اسارت میگیرند و گجدحم پیر گریخت از چنگ سخراب به که پیام میدهد که گرگ خونخاری برای ویران کردن ایران از مرزهای توران گذشته است که کاووز ترسیده با بزرگان و پخلوانان ایران به تار جویی پرداخته بران می شوند که هرچه زودتر گیب به زابود رفته رستم را از توپانی که در راه است آگاه کنه <تصفيق> به گیبان زمان گفت برسان دود انان تقاور به مایت نمایق چون ازی که رستم شدی به زابل بمانی وگر گل اگر شب روز را بازگرد بگویش که تنگندر آمد نبعد از اون نام بستم به آب. آب برفت و نجز آرام و گیب به شتاب خود را به زابر رسمده است رستم از او به گرمی استقبال می کند و گیب داستان را برای او بازگو کرده نامی شهریار را به وی می دهد رستم پس از آگاهی از وجود چنین پهلوان جوانی که مانندی سامد دلیر است می خندد و می گوید من از دختر شاه سمنگان پسری دارم مبادا او باشد اما او هنوز بسیار کم سال است برای پسرم هدایایی فرستادم و به من گفتم دیری نخواهد کشید که او پهلوانی خواهد شد چرا که به جای شیر میل میخورد. راست منگاه به گیه میگوید یک امشب باده خوریم با انگاه به نزد پادشاه ردیم و همتن چو بشنید و نامه بخاند بخاندید از آن کارو و به بمانید ماننده ی سام گرد از مهان سواری پرید آمدن در جهان من از دخت شاه سمنگان یکی به سر دارم و باقشدون کودک هنوز آن گرامی ندارند که چنگ توان باز کردن به هنگام جنگ فرست آدم زر و گوهر بسی سوی مادر او به دست کسی چون این تاسه خامد چان ارجمند وسیم بر نیایید که گردد بلند. <تصفح> همین می خورد بازلب شیر بود شود بی گمان زود پرخاش جود بباشیم یک روز و دم برسنیم یکی بر لب خوشک نم برسنیم و از آن پس گرائیم نزدیک شاه به گردان ایران نما ایم را مگر وقت رخشنده بیدار نیست وگرنه نه چون این کار دشخار نیست آن که به برستم خوشدار می که کاووس سخت از این دلاور جوان ترسیده و خاسته که به شتاب به نزدش بازگردیم می خوردن رستم با گی به جای یک شب چندین شب و روز دیگر نیز دامه پیدا میکن تا سرانجام رستم به سپاقیانش دستور حرکت داده به همراه گیف به پارس و به کاخ پادشاهی می رسند با دیدن رستم و خشبگین از گیر آمدنشان به گیر میگوید رستم که باشد که در اجرای فرمان من سستی کنند او را از کاخ بیرون ببر و بردار کش گیر حیرت زده و خشمگین خاموش است آنگاه که کاهوس زود خشم رو به توس فرمانده سپاهیان ایران کرده و به او میگوید هر دوی اینها را بردار و چون توس برای فرو نشاندن خشم شاه دستش را به سوی رستم دراز میکند رستم از پادشاه خوردهگیری میکند دست توس را به شدت پس میزند و از کاخ بیرون میآید گرازان به درگاه شاه آمدند گشاده دل و نیکخواه آمدند چون رفتند و بردند پیشش نماز برآشفت و پاسخ ندادیچ ماز یکی باگ برزد به گیو از نخوست پس آنگاه شرم از بگیده بشوست رستم که باشد که فرمان من کنک سست و پیچد ز پیمان من بگی رو ببر زنده بردار کن و نیست با من مگردان سخون ز گفته ها رو گیو را دل بخست که بردی به رستم بدان گونه دست برا با گیو با پیلتن، از او مانده خیره همه انجمن بفرمود پس تو را شهریا رو هر دو را زنده بر کن بدار. خود از جای برخواست کابوسه که برفروخت بر سان آتش زنی. بشد توس و دست تهمتن گرفت بدون منده پرخواست جویان شگفت که از پیش کابوس بیرون برد مگر کندران تندی افزون برد تهمتن برا شفت با شهریا چندین مدارات چند در کناب همه کارت از یک دگر بدتر است تو را شخیاری نه است تو سهراب را زنده بردار کن برا و بدخواه را خار کن بزد تند یک دست بر دست توست تو گفت ایز پیل ژیان یافت کوست زبالا نگونند در آمد به سر بر اون کرد رستم به تندی گذد. به در شد به اندر آمد به رقش. منم گفت شیر و جن تاج بخش چه خشم آورد شاه کاووس کیست چرا دست به من توز کیست زمین بنده و رقش گاه من است به جین گرز و کلاه من است شب تیغ از تیغ رقشان کنم با آورد گهبر سرفشان کنم سر نیزه و تیغ یار منند دو با و دل شهریار منند که آزاد زادم نمن بندم یکی بنده آفریننده هم. ایرانیان گفت سخرا به گرد بیاید نماند بزرگ و نخورد شما هر کسی چاره جن کنی خرد را به کار پیچان کنی به ایران از این پس مرا شما را زمین پر کرکس مرا بزرگان و دلاوران ایران شرمندی از آنچه که کهی کاووس با رستم کرد به گودرز پیر می این تنها از تو ساخته است که نزد پادشاه روی و به او بگویی که بد کرده است و باید از رستم دلجوری کنم سفختار گودرز کشفات رفت به نزدیک خسرو خرامی تفت به کاووس کی گفت رستم که کرد کسی این کن براوردی گرد چون رفت و آمد سپاهی بزرگ اما پهلوانی به کردار گوی چه داری که با او به روز نبرد شود برنشاند بر او تیر گرد یلان تو را سر به سر گرده هم شنیدست و دیدست از بیش و کم همی گویدان روز هرگز مباد که با او سواری کند راز یا؟ کسی را جنگی چو رستم بود براند پرد در سرش کم بود که پس از شنیدن سخنان گودرز پیر سخت از کرده خود پشیمان شده به او میگوید به شتاب در پی رستم روید و با سخنان نیکو سرش را از سرزنش های من توحی کرده بازش گردانی چو گودرز برخواست از پیش او پس پهلوان کیز بنهاز. برفتند با او سران سپاه پس رستمندر گرفتند را چو دیدند گرده جو پیلتن همه نامداران شدند در جامد ستایش گرفتند بر پهلوان جاوید مادی و روشن روان جهان سر به سر زیر پای تو باد همیشه سر تخت جای تو باد تو دانی که کابوس را مقص نیست به تندی سخن گفتنش نقص نیست به همان همانگه پشیمان شود، به خوبی زه سر باز پیمان شود. تا همتنگه را باشد زه شاه، را نباشد گدا. هموزان سخونها پشیمان شده است، زه تندی بخواید همی پشت دست. همتنگ چنین پاس خواهد باز. هستم زه کاغوس کیبی نیاز. مرا تخت زین باشد و تاج ترک قبا جوشن و دل نهاده به مرگ چه کاووز بیشم چه یک بشت خاک چرا دارم از خشم او ترس و باک سلام کرد سیر و دلم کرد بس جز از پاکی از نترسم زکست رور زخ خورده رستم به این آسانی در من پذیر نیست در آن هنگام که دلاوران ایرانی از بازگشت رستم ناامید شده بودند بودرز پیر چاره و ترفند ای به کار برده به رستم میگوید از سوی دیگر خوب است بدانی، از خشم و ناسزای شاه بین ایرانیان سخن نیست همه زمزمه میکنند که رستم از این دلاور جوان ترک ترسیده بهانه جویی میکند و از رزم با او سر باز میزند همه سخن از صحراب است نام بلند خود را تباه مکن دشمن در حال رسیدن است تاج و تخت ایران را برباد نده به گفتار چون سرد جمن چون این گفت گودرس با پیلتن شهرد دل ایران گمان به دیگر سخن ها برند این زمان کز این ترک ترسنده شد سرفراز همین گوید این گفته هر هرکس براز کزانسان؟ که دادا داداگهی همه شهر ایران باشد توهی چه رستم همیزو به به جنگ برا و نیست جای درنگ از آشفتن شاه و پیگار اوی ندیدم به درگاه بر او و سخراب ترک است یک سرسخون چون این پشت بر شاه ایران مکن چون بر شده نامتن در جهان به این بازگشتن مگردان نهان و دیگر که تانجام در آمد سپاه ما تیره بر خیره این تا رستم با شنیدن سخنان گودرز پیر به او میگوید دلی که بترسد بهتر است در سینه ام و باز نگردد رستم بر این داستان ها بران همتن در آن کار خیره به بدو گفت اگر بیم یابد دلم نخواهم که باشد دلم ببسلم از آن نهان برگشت و این دیر راه که آید به دیدار کاووز شا رستم به کاخ پادشاهی ایران باز میگرده که کاووس با دیدن رستم از جای برخواسته پراوان از او پوزش خواسته به او میگوید تندی و خشت سرشت من است بانگهی از رسیدن این دشمن ناشناس دلم در سینه چون ماه نو باری شده است از همین روی به شتاب تو را خواستم و چون دیرآمدی آمدی شدم رستم به پادشاه ایران میگوید اینک با همه وجود در اختیار تو هستم و شاه به او پاسخ می بگذار امشب را به بعض بگذارانیم تا فردا رزم را آماده شدید چون از دور شد شاه بر پای خواست بسی پوزشان در گذشته بخواست تندی مرا گوهر از دو چون چنان روز باید که یزدم بکشت از این ناسگاریده بدخواه نو دلم گشت هشت چون ماه نو بدین چاره جستن را خواستم چون دیگ آمدی تیزی راستم بدو گفت رستم گیهان تراست همه بندگانیم و فرمان تو راست کنون آمدم تا چه فرماندهی روانت ز دانش مبادا توی دو گفت کاهوست امروز بز گذینیم و فردا بسازیم سازیم رزق یاراز رامشگهی شاه با شده ای به کردار خوردن بخواه همی باده خوردند تا شب به رامش همه برگشا دل. دیگر روز فرمود تاگی و توس ببستند شبگیر بر پیل کوس در گنج بکشاد و روزی بداد سفه برنشاند و بنه برنهاد سپردار و جوشن وران ست هزار شمرده به لشگرگه آمد سوار یکی لشگر از پهلو آمد به دشت که از گرد ایشان هوا تیره گشت سرا پرده و خیمه زد بجوشی و گیتی ز نهل و ز پیل هوا نیلگون شد زمین آب نوز همین شد گوش از آواد کوز همین رفت منزل به منزل جهان شده تیره و روز گشته نهان درخشیدن خشت و ژوبین ز گرد چو آتش پس پردی لاج برد ز بس گونه, گونه سنان و درف سپرخای زرین و زرین کف. تو گفتی که عبری برنگ نوس برآمد به باقید از اون سند روز جهان را شب از روز پیدا نبود تو گفتی سپه و سریا نبود به دیم سند بشد دز رسید شده خاک و سنگ زمین ناپدید سپاهیان ایران به دشتهای زیر دژ سپید رسیدند دید بانان فریاد برداشته خبر رسیدن سپاهیان ایران را جار میزند سخراب و هومان به شتاب به بالای برج آمده دشت را زیر پای سپاهیان و سواران ایران پوشیده میبیند هومان میترسد و سخراب او را دلداری می دهد که که بیگمان در میان این سپاه هیچ کس را تاب رویارویی با من نیست خواهی دید من به بخت افراسیاب آزاده این دشت را دریای خون خواهم کرد. روشی بلند آمد از دیدگاه به سفرا بنمود آمد سپاه ترستی دید سخراب آوار شنید به بارو برآمد سپاه را به انگشت بنگوش لشکر به هومان نمود سپاهی آن را چرانه نمود چون هومان دوران سپخ را بدید دلش گشت فردیم و دم به هومان چونین گفت، سهراب گرد انویشه از دل به باید ستورد نبینی از این لشکر بیکران یکی مرد جنگی و گرزیگران که پیش مناید به آورگاه گریدونج یاری دهد خود ما سلیح هست بسیار و مردم بسی سرفراز و نامی نبینی کسی کنون من به بخت ردفراسیاب، خونم داشت خرخون چو دریای آب به تنگی ندادیچ، سهراب دل فرود آمد از باره شاداب دل یکی جام می خواست از می گسار نکردیچ رنجه دل از کارزار سخراب دردش، سرگرم باد است ترس را به جانش راخ نیست به زیافتی آمده است شب شده است آنجا در اردوگاه سپاهیان ایران در سراپرده پادشاهی تهمتن رستم دلیر به کیکاووس میگوید اجازه بده من شبانه با لباس ترکان به اردوگاه آنان روم و این دلاور جوان را از نزدیک ببینم پخلوانانشان را بسنجم و شمار سپاهیانشان را برابرد کنم که کاغوز به او میگوید، این کار از تو ساخته است و رستم به راه نفته خرشید گشت از جهان ناپدید شب تیره بردشت لشگر کشید تمتن بیامد به نزدیک شاه میان بست مرجنگ را کین خواه دستور باشد مرا تاجور کسی در شبم بی کلاه و کمر ببینم که این نوجهاندار کیست بزرگان کدامند و سالار کیست بهدو گفت این کار توست که بیدار دل بادی و تندرست همتن یکی جامعه ترکوار بپوشید و آمد دوان تا حساب پیاده چون از نزدیکی دزرسی خروشیدن نوچ ترکان شنید بدان ب درآمد تمتن چنان چون به آهو شود نراشید چو سحراب را دید بر تخت بعث نشسته به یک دستبر زند رفت به دیگر چو من سوار دلید دیگر بارمان نامبردارشید تو گفتی همه تخت سهراب بود بسانه یکی سرب شاداب بود دو بازو به کردار رانه هیون برش چون بر پیل و چهره چخون زه ترکان به گردن درش صد دلی جوان و سرفراز چون نرشید پرستار پنجاه با دست بند به پیش دلفروز تخت بلند همین یک به یک آفرین دافرین بران بورس باداف و تاج و نگین آری چون خورشیدی در جمع دلیران و سرداران همراهش میدرخشد و سرگرم باد بساری است دوستم شگفت زده این نماد قدرت و زیبایی را به تماشان نشسته است آنقدر شیفته و بیخبر است که زندرست سردار و پیشکار سهراب که در پی انجام کاری از مجلس زیافت بیرون آمده است او را قافل گیر کرده دستش را گرفته میپرسد کیستی آنجا چه می در پاسخ با مشکی زند رعز را از پای درآورده در سیاهی ناپدید می شدن. همی بود رستم همان دور نشستن همی دید و مردان سور به شایسته کاری برون رفت زند جویدی برسان سروی بلند به دان چون چنون چست نبود پسودش به تندی و پرسید زود چه ماردی؟ با من بگو سوی روشنی آیو بنمای روی تمتن یکی مشت برگردنش بزد تا برون شد ربان از تنش بدان جایه خشک شد زند رزم سرامرش رزم و سرامرش رز باز نگشت است کسانی به جستجوی او می روند و کشتش را پیدا می کند. خبر کشته شدنش را به سهراب میدهند. صخرااب بر سر او اون. خش دینگ به سردارانش میگوید گرگی به گله ماصدده است. همه شب هایتان را کیز کنید که پردا انتقام خون زن را از را خواهند. با این همه مرگ نزدیک مردانش، او را از ادامه مجلس شرابخاری و بحث باز نمی دارد. احساس و اندوه را در دل سخراب جای نیست <تصفيق> به سخراب گفتند شد زند رست سرآمد بر او روز پیکار و بست همان یهد چوبشنی بر زود بیامد آمد بر زند بر سان دود شگفت آمدش سخت و خیله بمان دلیران و گردنگتشان را بخواد چون این گفت امشب نباید آنود همه شب همین تیغ باید پسود که گرگ آمدن در میان رمه سگ و مرد را دید گاه دمه اگر یار باشد جهان آفرین چون نقل سمندم به زمین زفت را که زین برگشایم کمن بخواهم از ایرانیان چین زن دیامت نشست از برگاه خیش گران مایگان را همه خاند پیش گر کم شده از پیش من زندرز دیامت همان سیر جانم زبست <تصفيق> استم به نزد باز گشته است و از آن رخ داده او را آگاه می کند و به او میگوید شگفت است این جوان شباهت بسیار به سام می میان. میان ایرانیان و تورانیان یگانه است توران و ایران نمامد به کس تو گویی که سام سوار است و بس بس آن موشت بر گردن سنت که از این پس نیاید به رسم و به بس بگفتند و پس رود و می خواستند شب همین لشگر راستند خورشید بر آسمان پدیدار می شود آنجا در دشت خیمه بخرگاه سپاهیان ایران برپاست در میان خیل سپاهیان و اسبان اینجا و آنجا خیمه‌های های پرشکوهی با رنگ گوناگون به چشم می‌خورد. که جلوی هر یک از آنها بر فراز نیزه‌های بلندی در های پرشکوهی را باد به اهتزاز درآورده است هر کدام از این درفش‌ها و خیمه ها از آن یک سردار و دلاور بزرگ ایران است؟ سراپرده‌ای با شکوه از دیبای رنگ وارنگ با, با درفشی که نقش خورشید بر آن می شود و یک صد پیل زنده در اطرافش جای گرفته جایگاه نشست کیکاوس است. آن سویتر خیمه یک سر سیاه رنگ که نقش روی پرچم و درفشش است از آن توس فرمانده سپاهیان ایران است آن خیمه سرخ رنگ با درفشی نقش شیر از آن گودرز پیر است آری صوف هنگام است سهراب خفتان و لباس رزم در بر کرد است. از دشتی بیرون آمده بر فراز تپه بلندی می ایستد و به آن همه سپاهیان آن همه اسب و آن همه خیمه و آن همه شکوه و قدرت ایرانیان خیره شده است در میان دریای انسانها و اسب‌ها و خیمه‌ها او تنها و تنها یک چیز و یک کسا جستجو می‌کند رستم خیمه و خرگاه رستم را پس دستور می‌دهد حجیر دلاور ایرانی را که در چنگش اسیر است به کنار او بر فراز از او می‌خواهد که بپرسش های او پاسخ راست بدهد و برای شهر دهد که کدام خیمه از آن کدام پهلوان ایران است چه خورشید بنداخت زرین کمند زبان برآمد به چرخ بلند بپوشید سهراب خفتان جنگ نشست از بر چرمه خوب رنگ تمندی به فتراک بر شست خم خمان در برو روی کرد دوشم بیامد یکی تند بالا گزی به جایی که ایران را بدید بفرمود تا رفت هیچش به دو گفت پجی نیاید زتیر نشانه نباید که خم آورد صرفشان شود زخم آورد به هر کار در پیش کن راستی چو خواهی که نک زاگدت کاستی هر هرچه پرسم همه راستی به بکشتی مکن رایو چهار مجمی چو خواهی که یابی بیرهایی زمن صرف راز باشی به هر انجمن از ایران هران چطبه پرسم بگوی مطاب از راه راستی هیچ رو سپارم به تو گنج آراسته بیابیس من و خواسته برای دونک کشی باوت رای تو همه بند و زندان باوت جای تو بجیرش چنین دار پاسخ شاخت من هرچه پرسد سخنزان سپاه بگویم همه هرچه دانم به به کشی چرا بایدم گفته بود نبینی جز از راستی پیشم به کشی نیارد دلندیشم به دو گفت از تو بپرسم همه ز گردن کشان و ز شاخ رمه همه نامداران آن مرزا چا توس و چا و چا گودرزا ز بهرام و از رستم نامدار ز هر کت بپرسم به من بر شما سراپرده دیبه از رنگ رنگ به دویم درون اون پلنگ به پیشندرون بست صد زند پی یکی مهد پیوز برسان نیل یکی برز خرشی درفش سرش ماه زرین گلافش بنفش به قلب درون جایی کیست ز گردان ایران ورا نام چیست به دو گفت آن شاخ ایران باوند به درگاه و پیل و شیران بوند چون این گفت از آن پس بر میمنه سوار است بسیار و پیلو و بنه سراپردهی برکشید سیاه رده گردشن در زهر سوس پا زده پیش او پیل پیکر درفش به دربر سواران زرین کبش چون این گفت آن توس نوزر بود، درفشش کجا پیل پیکر مابند بپرسید آن سرخ پرد سرای سواران بسی گردشن به پای یکی شیر پیکر درفشی به درفشان یکی دور میانش گوهر، پس پشتشن در سپاکی گران، همه نیزداران و جوشنوران. چون این گفت، آن فر آزادگان، سپختار گودرز کشفادگان. سخراب می پرسد و خجیر از سر راستی تا سخن. تا سرانجام نوبت به خیمه و خرگاه پرشکوه و, و سبز رنگ رستم دلیر میرسد خیمه‌ای که در کنارش درف 16 ها پیکر رستم به چشم میخورد سهراب از پهلوانی که در این خیمه با هرچ هرچه تمامتر در میان دلاوران نشسته و بار و اصلی یگانه بر در خیمه او مدام چون شیر میخورد و شي نمی‌کشد میپرسد دریق و درد که این بار به سخرا دروغ گفته به وی میگوید پهلوانی چینی است که به خدمت پادشاهی ایران در آمده است من نام او را رو از بر نمی دانم چه من اینجا در دژ سپید بودم هنگامی که او به نزد شهریار ایران رسید آری او دروغ می گوید و رستم و رخشا به سخرا نمیشناساند. آن سفز پرد سرای یکی لشگری گشت پیشش به پای یکی تخت پرمای اندرمیان زده پیش او اختر کاویان یکی باره پیشش به بالای او فرو فروحشده تا پای او بر او هر زمان برخروشد همی تو گفتی که در زین بجوشد همی بسی پیل برگستوان ور بر به پیش همی جوشد آن مرد بر جای خیش نمرد است از ایران به بالای او نبینم همین از تای او طرف شش پدید، اجدها پیکر است به دان نیزه بر شیر زرین است. چون این گفت از چین یک نیخا به نفی رسیده است نزدیک شاه پرسید نامش سفر و به دو گفت نامش ندانم سفیر این دست بودم من بدان روزگار کجا او بیامد برای شهریار سخرا غمگین می شود مادرش تمامی نشانه های پدر را به او داده بود و اینک پدر در برابر دیدگانش بود و او را نشناخت. او همه نام ها را از خجیر می پرسد مگر نام پدر را بشتند اما سرنوشت چیز دیگری میخواست هیچ کس را یا راه کم و بیش کردن سرنوشت و تغییر نیست قمیگش سخراب را دل بدان که جاییر زرستم نیامد نشان نشان داده بود از پدر مادرش همی دید و دیده نبود باورش همین نام جست از زبان حجیر مگر کان ها شود دلپذیر بشته به سربر به گرگونه بود سفرمان نکاهد نه هدیس و باز هم از خیمه ها و پهلوانان دیگر میپرسد، و حجیر نام یک پهلوانان ایران و رنگ خیمه و نقش پرچمشان را باز میگوید. دیو گیر پسر بزرگ گودرز پید. فری پسر پادشاهی ران کیکاووس گراز از خاندان گیگان آری همه نامها بر زبان حجیر می رود جز نام رستم او نام و نشان پدر را می جوید و حجیر را پنهان می دارد. فردوسی بزرگ که از بازی تقدیر به خشم درآمده به ما پند تلخی می دهد که چه بیهوده می تقدیرت را بسازی جهانبان این کار را برای تو کرده است زمانه از پیش راه رفتن ما را تدارک دیده چنین است که باید با بد و خوب زندگی ساخت نشان پدر جستو با او نگفت همین داشتن راستی در نهو تو گیتی چه سازی که خود ساخته است جهانبان از این کار پرداخته است زمان نوشته دگرگونه داشت چنان کو گزارد به باید گذارد شد سخرا بار دیگر سراغ دلاور خیمه سبز را میگیرد آن اسب تنومند جلوی در خیمه و حجیر بار دیگر دروغ گفته به او میگوید نامش را نمیدانم چون او را نمیشناسم سهراب میگوید پس رستم شما کجاست و حجیر پاسخ میدهد شاید در زابل است اینک بهار است و هنگامه و سهراب به تلخیم می خندند. رستم و بزم او دلش پیش میدان رزم است به پرسید از آن سرفراز از آن کشم دیدار او بود نیاست از آن پرده سبز و مرد بلند و از آن اسب و آن داده کمند به پاسخ حجیر ستی همده گفت از تو سخن سخنها چه باید نهب گر از نام چینی بمانم همی از آن از کورا ندانم همی بدو گفت سخا، این نیست داد. زرستم نکردی سخن هیچ یاد کسی کوب بود پهلوان جهان میان سفه نماند نهان تو گفتی که بر لشگرون است نگهبان هر مرز هر کشور است چون این داد پاسخ مرورا حجی شاید بودن کانگو شیرگیر کون رفته باشد به زاول ستان جنگام بسم است بر گل به بدو گفت سخرام این خود مگوی که دارد صفح سر جنگ رود به رامش نشیند جهان پهلوان بر این بر بخندند پیر و جوان صفراب با دیگر از حجیر میخواهد که به او راست بگوید وگرنه سرش را از تنش جدا خواهد کرد و حجیر میگوید ای دلاور از جانت سیر آمده ایک از من نشان کسی را میپرسی که در رعز پیل و مرد در برابرش یکیست و سهراب که در جهان کسی را برتر از خود نمی با آنکه که از رستم پدر او ستایش می کند خشبین شده به او میگوید گوید پدرت گوده است که پسری چون تو داره تو کجا مردان جنگی دیده ای که دمادم از رستم ستایش می و از آتش میترسی اما من که چون دریای آرام و خندانی هستم هر آتشی را خاموش میکنم من خورشیدی هستم که هر تیرگی چون رستم را با تیغم از میان برمیدارم چون این داد پاسخ هجیرش که شاه چو سیر آمد از تخت و مهر و کلاه در برد کسی جویدن در جهان که از عبر باداری در دمان کسی را که رستم بود هم سرش داس ماننده را به گرد هم آورد او بر زمین پیل نیست چون گرد پی رخش او نیل نیست تنش زور دارد به صد زور مند. سرش سرش است از دلخت بلند. چون او خشب گیرد روز نبعد که هم رست او زنده پیل و چه مند بدو گفت سخراه از آزادگان سیه وقت گودرز کشفادگان کجا چون تو را خان با پسر بدین زور و این دانش و این خنن تو مردان جنگی کجا دیده ای که با یه په اصل نشدیده چه چندین ز رستم سخون زبان بر سطودنش بکشایدند از آتش تو را بین چندان بابند که دریا به آرام و خندان بابند چو دریای سبز در آی جای ندارد دم آتش تیز پاک سر تیرگی اندر آید بخواب خواب تیغ از میان برکشد آفتاب با این همه خجیر ناکار دیده و می تجربه از فاش کردن نام دلاور خیمه سبز رستم سرباز می زند. حجیر میاندی شد اگر این جوان دلیر و کینجو رستم را بشناسد همه توش و توان خود را به کار میگیرد تا او را از پای درآورد و وانگاه تخت و تاج ایران به باد خواهد رفت بهتر است من کشته شوم تا ایران بماند آهی حجیر اگر حقیقت را گفته بودی شاید سوار سرنوشت به راخه بیگری می رفت به دل گفت ناکار دیده خجیب کرمان نشان که بگویم به این ترک بازور دست چون این یال و این خوصوانی نشف سلشتر کند جنگ جویان برانگیزد این باغه پیلتن به این کتف و نیروی و این یال او شبت کشته رستم به چنگان او وزیران نواشد کسی که این خواه بگیرت سر تخت کافوز شاه چون این گفت موبت که مردن به نام به از دشمن بدون شاد کا. سخرا، ناامید از یافتن رستم چون کوه آتش پشانی که ناجهان میقرد و آتش میبارد یک تن سوار بر خود را به قلب سپاه ایران رسنده چندین خیمه خیم و خرگاه را از جای برکنده بی انکه کسی را یارای ایستادگی در برابرش باشد در برابر خیمه و خرگاه که کاووس ایستاده فریاد میزند ای شاه پردار و چگونه است کارت بدشته نبرد چرا کرده این نام کاووس که که با جنگ نه پای داری نپی بدین نیزر جان بر تو بریان کنم ستاره همه با تو گریان کنم یکی سخت سوگند خوردم به بعض به دانشم کجا کشت شد زندرست کسی ایران نمانم یک چینیز دار کنم زنده کابوس کی را به دار کرا از لشکر جنگ جون که پیش کنم روی رو انگاه صحاب هشت گنانه به سوی خیمه پادشاه ایران از برانده تیره کابو هشتاد می را از جای میکند بخشی از خیمه و خرگاه پادشاهی ایران فرو می ریزد هیچ کس را جرعت رویارویی با این گره خشدین کفبرده نیست کاو شاه ترسیده خشدین دران حیاهو فریاد می زند یکی نست درستم برید آگهی کسی این توک شد مقص وردان توهی ندارم سواری هم نبرد از ایران نیارد کسی این کار کرد بچد توس و پیغام کابوس بود شنید سخنها به دو برش مود. چون این گفت درستم هر شه یار که کردی مرا ناگهان خواست دار گهی رز بودی جاه ساز بس ندیدم ز کابوس جز رنج به بفرمود تا رخش را جزم کند سباران بر پرستین کنند ز خیمه نگه کرد رستم به دشت ز رختی کندر گذشت نهاد از بر رخش رخشند زیم. همی حمی گفت گرگین پشتو همی حمی باست مال درسه روحام تنگ به برگستوان در زد توس چنگ همین این بدان آن بدین گفت زود تهم چو از خیم آبا شنود به دل گفت این رسم اهریمن است نه این رسم ایز از په یک است. بزد دست و پوشید ببر بیان به بستان کیانی کمر برمیان نشست از بر رخش و برداشت راه زبار نگهبان رخت و سپاه گرفت کش ببردند با او به هم همین رفت پرخاخش جود و دوشم. آری تقدیر سرانجام پدر و پسر را رو در روی هم قرار میدهد. این بلند بالاترین فراز جفا روزگار است رستم خود را به سهراب میرساند و به او پیشنهاد میکند برای نبرت با یکدیگر به گوشه دور از نیدرس و دسترس دیگران روند و سهراب میپذیرد. احساس ناشناختی مهرامیزی نسبت به یکدیگر در جانشان شعله میکشد هم از این روست که سهراب از پهلوان ایرانی میپرسد راستش را بگو تو نیستی؟ و رستم دروغ میگوید خیشتن را انکار میکند چرا چون رستم آبروی ایران است نماد دلاورانی ایران است با خود اندیشیده است بگذار اگر کشته شوم دشمن گمان برد پهلوانی بینام و نشان را کشته است رستم زنده است در راه است و برای ایران امیدی باقی بماند که صحراب را دید با یال و شاخ برش چون بر سام جنگی پراخ به دو گفت از در به یک سو شوی باورد گاهی پیاهو شوی به مالی صحراب کف را به کف باورد گه را از پیچ سف برستم چون این گفت رو تارویم از این هر دلشگر به یک سو شویم چلشگر نخواهیم با یار کس که من باشم و تو در آورد گهبر مرا جای نیست تو را خود به یک مشت من پای نیست به بالا بلندی و با شاخ و یال ستم یافت یالت بسیار سا به گه رستم بدان سر فراز بدان برز بالا رکیب دراز دو گفت نار به این جوان مرد نه زمین سرد و خشک و سخون چرب و جرب. به پیری بسی دیدم آوردگاه بسی بر زمین کردم سپاه توخ شد بسی دیف در چنگ من ندیدم بران سوک بودم شکن بگه مرا تا ببینی به جنگ اگر زنده مانی ما ترس از نهنگ مرا دید در جنگ در یاب و کو که با نامداران گروه چه کردم ستاره یوای من است به جهان زیر پای من است آمد زرستم چون این گفت گوی به جنبی سهراب را دل بروی بدو گفت از تو بپرسم سخن همه راستی با یه دفکند بل من نیدون گمانم که تو رستمی گر از تخمه نام و نیرمی چون این داد پاسخ رستم نیم هم از تخمه سام نیرم نیم که او پخلبان است و من کهترم نه با تخت و کام و نه با افسرم از امید صحراب شد ناامید برو تیره شد روی روز سپید با ورگه رفت نیزه بکفت همین ماند از گفت مادر شگفت یکی تنگ میدان فرو ساختند به کوتاه نیزه همین باختند نماندید با نیزه بند و سنان به چب باز بردند هر دو انان به شمشی هر دو برا همی زاهن آتش کن و به زخمندرون تیخ شد ریز ریز چه زخمی که پیدا کند راست ریست. گرفتند از آن پس عمود گران قمی گشت که گنداوران زمی رو عمودند درآورد خم دمان باد پایان و گردان دو جم از اسفان فوری برگستوان زره پاره شد برمیان جوان فروماند ماند عصب دلا و سوار یکی را نبد دست و بازو به تن از خوی فراب و همه کام خاک زبان گشته از تشتگی چاک چاک یک از دیگران ایستادند دور پر از رنج باب و پر از تاب بران دشت دور افتاده نبرد بی امان بین پدر و پسر ادامه دارد هیچ کدام را قدرت چیرگی دیگری نیست سلاح در دستشان شکسته و بازوانشان کوفته و خسته است و فردوسی بزرگ تماشاگر جافدان و خردمند همه ستیزهای بشری و این نبرد با شگفتی و اندوه و خشم جهان و بازیهایش را سرزنش کرده میگوید چگونه است چارپایان و ماهیان و جانوران توانند فرزندشان را باز شناسند اما انسان از بیخردی چنین توانایی را ندارد جهانا چه یفتا دا کردار توست هم از تو شکسته هم از تو درست. از این دو یکی را نجام مه خرد دور بود مه ننمون چه همین بچه را باز داند سطور چه ماهی به دریا چه در دشت کور نداند همین مردم از رنج آز یکی دشمنی را ز فرزند باز رستم از سر ناامیدی می کوشد سخراب را از زین برگرفته بر زمین زند سخراب چون کوهی بر پشت زین اسبش استوار است سرانجام هر دو از ناتوانی خیش به مستی به شکایت رسیده دست از نبرد با یکدیگر دیگر برداشته به سوی انبوه سپاهیان آن دیگری هجوم میبرد رستم چون پلنگی خشت این به کشتن تورانیان میپردازد و سهراب چون گرگی خونریز به قلب سپاه ایران یرش میبرد. به مستی رسید این نزان آن از این چونان تنگ شد بردل ایران زمین که از یکدیگر رون برداشتند دل و جان و اندو بگذاشتن تمتن به توران سپه شد به جنگ به سان که نخستیر بین لطلند به ایران سپه رفت سپرا به گرد انان باره کیش حق را سپر میان سپاه در آمد و گفت خراکنده گشتان سپاه بزرگ در میانی این جنگ دهشتناک ناگهان رستم با خود میاندیشد مبادا این پهلوان جوان و خونریز خود را به کیکابوس رسانده شاه ایران را از پای درآورد پس از کشتار تورانیان دست کشیده خود را به قلب سپاه ایران میرساند آنجا صحراب سرگرم ریختن خون است از زره و شمشیرش خون میچکن رستم فریاد میزند چگونه شد که از نبرده با من دست کشیدی و چون گرگ به گل نزده بیدادگری میکنی و صحراب فریاد زنان میگوید این تو بودی که در این پرخاشگری پیشگام بودی دل رستم اندیشهی کرد بند کاغوس را بیگمان بد رسد از این پرخونر ترک نو به خفتان بر باز یا راسته گه ایش تازی زود کندیشی دل بران میان نیان سفختی سهراب چومهی لل کرده خون آب سر نیزه پرخون و خفتان و دست چو شیری که گردن زنخجیر مست همین گشت بستم چو او را بدید خروشی چو شیر جیان برکشید ای چیز خونخار مرد از ایران سپاه جنگ با تو چکر چرا دست با بد پسایی همه چون گرگندرائی میانه رمه بدون گفت سهران توران سپاه از این راز بودند بر بیگناه تو آهان کردی بدیشان نخست کسی با تو پیگار و چینه نجست بدون گفت رستم شد تیره روز تو پیدا کند تیغ جی تی فروز بگردیم شبگیر با تیغ چین تو تا چه خواهد جهان آفرین سخرا به خیمه و خرگاه خود بازگشته است در وجودش هیچ نشانی از خستگی جنگ نیست گویی گردون وجودش را از جنگ سرشته است رستم نیست از میدان جنگ گشته است نخست گیو را میبیند وگی به او گزارشی از حجوم دهشتناک صحراب به سپاه ایران داده میگوید هیچ چیز نمانده بود که گرگین و توس به دست این جوان خونریز کشته شود آنگاه رستم قمگین به خیمه و خرگاه پادشاه می گوید چو که پهلبان را بدید برخیش نزدیجایش جایش کدید. ز صحراب رستم زبان برگوشد ز بالا و برزش همی یا یاد <ققیقی> کس در جهان کودک نارسید بدین شیر مردی رو به بالا ستاره پسایت همین را بر همین برگرایت همین به گرز و به تیغ و به تیغ و کمند سه هر گونه آزمود این چند به فرجام گفتم که من پیش از این وسیع گرد را برگرفتم ززین گرفتم دوال کمربند اوی بیست که سخت پیوند اوی همی خواستم کشت زین برکنم کنم چونی گر کسانک به خاک کنم گر از باد جنبان شود کوه خار به جنبی برزین بران نادار چا فردا بیاید به دشت نبرد به کشتی همی بایدم چا رستم فرداها با دشمن کشتی خواهد. گرد. اما اینک تیر شبیخولناک است. به خیمه خیش بازگشته. برادرش زواره از او میپرسد در نبرد امروز چه گذشت؟ و رستم از سهرگاه فردا و دور دیگر نبرد با دشمن از راه رسیده سخن رستم به برادرش زواره میگوید: اگر بر این جوان پیروز شدم سپاه و درفش کفش زرینم را به آورداخ بیاورد و اگر کشته شدم بر مرگم اشک مریض دست از جنگ بدار با سپاهیانم به زابول و به نزد پدر زال بازگرد مادرم را دلداری بده و پخلبانی هاو. و پیروزی خایمه مرا به یادش آورد و به او بگو اگر هزار سال هم زندگی می کردم، پایان کار همین بود. به پدرمان بگو از پادشاه ایران روی بر نتابد و در جنگ با دشمنان ایران یاریش دهد آری گستم به خیمه خیش بازگشته است بلشگرگه خیش به نهاد رو پرندیش جان و سرش کین جود زواره بیامد خلید روان امروز چون رفت بر پخروان چون این ران پیش برادر سخن، بیدار دل باش و سستی مک شبگیر چون من با کا، روان پیشان ترک ناورد خواه همی باش بر پیش پرده سران که تاوان تابان برامد جای گری پیروز باشم به جنگ بدان دشت کین بر نسازم درنگ بیاور سپاه و درفش مرا همان ساز و زرین کفش مرا اگر خود دگرگونه گردت سخون تو زاری مساز و نشندی مکن مباشی یک تن بدین رهزم کا مسازید جستن سوی رهزم را سراسر سوی زابلستان از عزیدر به نزدیک دستان شوید تو خرسند گردان دل مادرم چون این را گردند چرخز برم بگویش که دل را در این قمه بعد من شو جافدانه سمرگم نشند که کس در جهان جافدانه نماند سگردون مرا خود بهانه نماد. بسی دیو و شیر و نهنگ و پلنگ تبه شد به چنگم بهنگ بسی باری دز که چردیم پست نیاور کست دست من زیر دست در مرگ آن کست بکوبد که پای به اصلا آرد به اگر سال گشتی فزون از ازار همین بود را همین بود کمار چه خورسن گردد به دستان بگو که از شاه گیتی ما بر اگر جنگ سازد تو سستی مکن چنان رو کرانند از این درس خون همه مرگ جایی پیل و جوان بگوی که نماند کسی جا. نیمه های شب بین رستم و برادرش زبار سخن سخراب است و نیمه دیگر خواب ز شب نیم گفتار سخراب بود دگر نیمه آرامش و خواب چو خورشید تابان بگسترد فر سیهزاق پرران بینداخت پر تمتن بپوشید ببر بیان نشست از بر اشده های بیامد بدان دشت آوردگاه نهاده به سربرز آهن کلا همه تلخی از بحر بیشی بود مبادا که با آز خیشی بود انسو در خیمه سخراب هنوز بسم و بادخاری ادامه داره سخراب به خومان میگوید این پهلوان پیر در نبرد با من خستگی ناپذیر است چه شگفت مانندی من است گویی ما را با یک رسن اندازهگیری ساخته و پرداخته مبادا پدرم باشد مبادا خیره سری میکنم و به روی پدر شمشیر میکشم آه آهی افراسیاب تو میدانستی چه میکنی تو هومان را برای پاسخ دادن به چنین پرسشی به نزد سحراب فرستادی که به او بگوید من رستم و رخش او را بارها دیدم این پهلوان کجا؟ رستم کجا؟ این اسب کجا؟ رخش رستم کجا پس آن روی سخاب با انجمن همین میگذاری با روززن به هومان چنین گفت این شیر مرد که با من همین گرددن در نبرد زبارات من نیست بالاش کم به درون دل ندارد دوشن برو کت و یالش همانند من تو گفتی نگارنده برزد رسد ز پای و رکیبش همین مهن من به به شر ماورد چهر من های مادر بیاوم همین به دل میز لختی بتاوم همی. گمانه برم من که او رستم است که چون اون نبرده بگیتی کم است؟ باید که من با پدر جهنجوی شدم خیر در آرام بروت. بدو گفت هومان در کارزار رسیده است رستم به من چند با. به این رخش مانت همی رخش کنون ولی که ندارد پی و بخش کنون صحراب با آسانی فرید میخورد لباس رزم برتن میکنه اما هنوز از بعض سیر نشده است دو هم نبرد بار دیگر به گوشه دوری می روید سهراب با لبخند از رستم میپرسد شود چگونه گذشت؟ و از او می خواهد دست از نبرد بردارد دستش را در دست او بگذارد به او بپیوندد و بگذارد کس دیگری از ایرانیان به جنگ با او رود و رستم سر باز می زند دستش را پس می زند. چه می بایست بکند؟ دست در دست دشمن ایران بگذارد با سپاهیان توران همراه شود و رو در روی گودرز پیر و توس و گیر بیستد و از ایرانیان بکشد پس به او میگوید اگر تو جوانی من کودک نیستم روز گذشته گفتگوی من بر سر کشتی گرفتن بود و سهراب به او میگوید آرزویم این بود که به هنگام و دربسترد مرگت فرام میرسید و بازماندگانت برایت ستودان و آرامگاهی برپا می کرده. پس اگر به دست من کشتنی هستی به فرمان خداوند نبرد را آغاز کنید به پوشید سهراب خفتان رزم سرش پرز رسم و دلش پرز باز بیامد خروشان بدا او به هم بود شفت شب چون بودت، روز چون خواستی ز پیگار بر دل دل آستیم ز دور کن باب رو شمشید بزن جنگ و بیداد را بر زمین یا تانشینیم هر دو به هم به میل تازه داریم روگ دوشم به پیش جهاندار پیمان کنیم دل از جنگ جستن پشیمان کنیم به تا کسی دیگر آید برست تو با من بساز و بیاراید باز دل من، همی بر تو مهر آورد همی آب شرمم به چهره همان همانا که داریز نیرم نشاد، کنی پیش من گوهر خیش یاد مگر پور دستان سام یلی، پس نامور رستم زاهولی بدون گفت رستم، ای نامجو. نبودیم هرگز بدین گفتگو ز کشتی گرفتن سخن بود دوش، لگیرم پری به توزین مکوچ نمان کودکم گر تو هستی جوان به کشتی کمر بستم برمیان بکوشیم و فرجام کارن بود که فرمان و رای جهانبان بود بسی گشتم در فراز و نشی نیام مرد دستان و بند و فری بدو گفت آب از مرد پیر نباشد سخونزین نشان دلپذیر. مرا آرزو بود که بر بسترت برای به هنگام حوش از برد کسی از کس تو ماند ستودان کند ببرد روان تن به زندان کند اگر حوش تو زیر دست من است به فرمان یزدان بیازیم دست هر و دلاور از اسخانشان به زیر آمده افسار عصبها را به سنگ دهشت می بنده. به کشتی گرفتن آغاز می کند خون و خوی عرق از تنشان جاری است و سرانجام این صحراب است که پشت پدر را به خاک می‌رساند و خنجر می‌کشد تا سینه اش را بدرد مرگ رستم مرگ همی دلاوران ایگان است مرگ رستم مرگ بسیاری زنان و مردان و کودکان ایدان. مرگ رستم مرگ همه ایران است در آن لحظات بین مرگ و زندگی می گمان رستم با خود میاندیشد که اگر پیر شدم و زور بازوگم برای بازداشتن این دشمن خونگیز از ویرانی ایران وسنده نیست بگذار از خرد و تجربه خیش بحرگیدم پس به سخراب میگوید دست نگه دا. ما ایرانیان را رسم و راه چنین است که چون پشت دشمن را به خاک می‌رسانیم، بار نخوست او را نمیکشیم اگر بار دیگرش بر زمین زدین کشتنیست و خونش را خواهیم ریخت. و سخرا می دست از رستم بر و از روی سینه پدر بر از اسبان جنگی حرود آمده پشیبار با گبر خود آمده ببستند بر سنگ اسب نبار برفتند هر دو سران پرزگر چوشیران به کشید برای بیدن زه تنها خوی خون همیریدن بزد دست سهراب چون کیل مست براوردش از پایو بنهاد هست بکردار شیری که بر دور ند زدد دست و گورنده را ید به سر نشست از بر سینه پیل تن برست خوافت چنگال و روز و دهن که کی خنجری آف برکشی همی خوافت از خن سرش را بری نگه کرد رستم به آواز گفت این راست باید گشاد از نهوت دگرگونه تر باشده این ما جزین باشده رایش دین ما کسی کوب کشتی نبرد نبر آورد سر محتری زیر گر آورد و خستیم که پشتش دهد بر زمین نبرد سرش گرد چه باشد بکیم اگر بار دیگر شیر آورد به افتندش نام شیر آورد روا باشد از سر کند زود جدا چون این بود تا بود کائین ما سهراب باز هم فرید است و این بار از پدر فیز او بر این باور است که پیروزی همیشه از آن اگر بار نخست همرزم رزم را به زیر است بار دیگری نیز توانت چنین کند آری سخرا رستم را رها کرده است گویی نبردی در کار نبوده از تو نیست به دشت می رود تا آهو شکار کند بیان آنکه از رستم حتی اندکی اندیشه در سر داشته باشد رستم رها شده است چنگ سخرا خود را به آب روانی می آب می نوشند تن شدهی چون مرده ای که زندگی دوباره به او داده باشند سر و تن می شوده. و در برابر خداوند زانو بر زمین می زند. و از او پیروزی میخواهد نمیداند که فلک اثر او چه کلاهی خواهد تو و دریق و افسوس که نمیداند از خداوند چه قمی را به جان خواسته است مرگ سهرابش چهرست چنگ به آزاد گشت به سان یکی تیغ پولاد گشت خرامان بشک سوی آب روان چنان چون شده باز یابد روان بخرد اب و روی و سرو تن بشست به پیش جهان آفرین شد بخست همی خواست پیروزی و دستگاه نبود آگه از بخش خورشید و ما که چون رفت خواهد سپه وز برش بخواهد رو بودن از سرش آری رستم پس از نیایش به درگاه خداوند بار دیگر به میدان نبرد با سهراب پای میگذارد سهراب از شکار گور خر آمده است زخم زبان میزند اسبانشان را بار دیگر میبندند و دور دیگری از کشتی گرفتن آغاز می شود رستم چنگ می زند و کمربند چرمین سخراب را در میان انگشتانش می گیرد و ناگهان همه ی دنیا به دلش هجوم می آورد چرا؟ چون پی می برد که خداوند نیایش هایش را پذیرفته و این بار حریف جوانش را دیگران زور و توان و سنگینی نیست مرگش از راه رسیده است آسان حریفش را پسرش را از جای می کند. آسان پکشتش را به خاک میرساند و به شتاب دشنه از کمر جدا میکند کند و پهلوی صحرابش را از هم می دارد. آری رستم از نیایش به درگاه خداوند بازگشته است و از آن آب چون شد به جای نبرد پرندیشه بودش دل و روی زرد چو صفراب باز آمد او را به دیل زباد جوانی دلش بردمید چون این گفت ای رست از چند شیر جدا از زخم شیر دلیل به گرباره اصبان ببستن سخت سر. به سربر همی گشت و تا بعد پشتی گرفتن نهادن سر گرفتند هر بود دوال کمر هران گهد که خشم آورد وقت شوم کند سنگ خارا به کردار مو سرف راز صحراب بازور در تو گفتی سپهر بلندش ببست دمین گشت رستن بیازی کنگ گرفتشت برای یال جنگی پلنگ هم آورد. بشت دلیل و جوان زمان بیامد نماندش خوان زدش بر زمین برد به کردار شیر به دانست هم نماند بزیر سبک تیده چیز از میان برکشی بر شیر به برده سفرام از درد به خود می پیچند همه چیز تمام شده است بد و خوب و آرزوها و قرور و آزمندی به پایان رسیده است سهرا در آستانی مرد بیدار شده است به رستم می گوید ای پهلوان این بد این مرد این بشن را خود به جان خریدم تو تنها ابزاری در دست روزگار بودی تو بی که این روزگار گوش پشت مرا بسیار زود به اوج زندگی و بسیار زود به آستانه مرگ کشان کودکان همسال من در کوی برزن سرگرم بازی هستند مادرم نشانی های پدر را به من داده بود مهر پدر مرا به مرگم رساند و اینک اگر تو در آب ماهی شوی و یا چون شب در سیاهی شوی سرانجام یکی داستان کشته شدنم به دست تو را به به پدرم باز خواهد گفت و تو از چنگش رهایی نخواهی یافت به پیچید از آن پس یکی آه کرد زنیکو بدنیش کوتاه کرد بدو گفت این بر من من رسید زمان را به دست تو دادم کلید توز این بی گناهی که این گوش حوشت مرا برکشید و بزودی بکوشت به بازی به کویند من به عبرندر درآمد چنین یال من نشان داد مادر مرا از پدر ز مهرندر آمد و بامن بسر همین جستمش تا ببینم شروع چون این جان بدادم به دیدار او کنون گرد تو در آب ماهی شوی و گرد چون شبن در سیاهی شوی و چون ستاره شوی بر سپه به بریز روی زمین پاکه به خواهد همست که پدرکین من چو داند که است، بالین من و از این نام داران گردن کشن کسی هم برد سوی رستم نشان که سهراب کشتست و تفکند خواه تو را خواست کردن و میخواست <تصفيق> رستم با شنیدن نام خود از دهان سهراب پی میبرد این سهراب اوست که در خون خیش بود که میخورد فریاد میزند بیخوش میشود و چون به هوش میآید از دلیر زخم خورده میپرسد از رستم با خود که نشان داری چو بشنید رستم سرش خیره گشت جهان پید چشماندرش تیره گشت به شد هوش و توشش ز مغز و زتن چون سرین در چمن بپرسید از آن پس که آمد به خوش بهدو گفت با نالو و با خروش اكنون که داری ز رستم لشان چه کم باد نامش، زگردن کشان دو گفت عریدون که رستم تویی بکشتی هر آخیر برمت خوبی زهرگونهی بودم اتره نما نجنبی یک بار مهرمز چای کنون بخت بچه های از این نگه کن تن روشنم چو برخواست آوای کوس از درم، بیامد پر از خون درخ مادرم همین جانش از رفتن من بخست یکی مهره بر بازوی من ببست مرا گفت این از پدر یادگار به و ببین تا که یاید بکار قانون، کنون, <تصفيق> کنون کارگر شد که گشت پسر پیش چشمه، پدر خواهد گشت. چون بکشاک خفتان آن مهردید، همه جامعه پهلوی بردارید، همی گفت ای کشته بر دست من، و ستود به هر انجامن. همی ریفت خون و همی چند موی، سرش پرز خاک و پر از آب روی، به دو گو، زهراب، این بدتریست. به آب دودیده نباید گریست. از این خیش تنخستن اچنون چست، چنین بود و این بودنی کار بود. <صکم> زهراب به رستم میگوید، از این گریزدن و روی خراشیدن چه سود که سرنوشت و بودنی یعنی کنین میخواست دیرگاه شب است از رستم خبری نیست به کیک کابوس خبر میدهند اسب رستم و اسب دیگری سرگردان در دشت دیده شدند در اردوگاه ایرانیان بلبلهی برپاست موغ ها و کوس ها به صدا درآمدند آمدند فریاد های خشت و فرمانهای از دور به گوش رستم و فرزند قرق در خونش میرسد سحراب به پدر میگوید با مرگ من کار ترکان به پایان میرسد تو مهربانی کن مگذار کاووس به جنگ با آنان ادامه دهد من با آنها نوید پیروزی ها داده بودم آنها برای من به ایران آمده بودند بگذار بدون رنج به توران باز بازگرده نشست از بر رخش رستم چو گرد پر از فنرخ و لب پر از باد سر بیامد به پیش سپه با خروش دل کرده خیش با درد و جوش چو دیدند ایرانیان روی او همه برنهادند خاک روی ستایش گرفتند بر کردگار که او زنده باز آمد از کاغزا چو زنگونه دیدند پر خاک سر دریده برو جامعه هست جگر به پرسش گرفتند که این کار تو را دل بر این بونه از بحر کیست بگفتان شگفتی که خود کرده بود گرامی تر خود بیازرده بود همه برگرفتند با اون خروش نماندان زمان با سفهدار توش چون این گفت با سرفرازان که من نه دل دارم امروز نهوش شتران شما جنگ تورکان مجویید کس همین بد که من کردم امروز بس آنگاه رستم برادرش زواره را به نزد هومان سردار تورانی می‌پرستد و با آنها پیام میدهد راه خود را بگیرید و به توران باز گردید و سپس بار دیگر خود را به شتاب به سهراب دلبندش میرساند. بزرگان ایرانی گریان و غمگین با رستم آمدند رستم دشنهای برداشته تا خون خیش را بریزد پهلوانان ایران به سختی با او گلاویز شده دشنه را از او میگیرند و گودرز پیر میکوشد تا با سخن درد جان کاهش را آرام بخشد و به او میگوید از آسیب رساندن به خود چه دردی از صحراب ارجمند کم خواهد شد چو برگشت از آنجا یه پهلوان بیامد بره پور خست روان بزرگان برفتند با او به هم چو توس و چو گودرز و چون هم همه لشکر از بحران ارجمند زبان برگوشادند یک سرز بند که درمان این کار یزدان کند مگر که این سخن بر تو آسان کند یکی دشنه بگرفت رستم به دست تسپن به برد سره بزرگان به دو جندر آویدن سه مشکان همی خون خروبیدن به دو گفت دودرز اکنون که سود که از روی گیتی براری تو دود تو برخیشتن گر کنیست سد گزند چه آسانی آگه بدین اردمند اگر زنگ باند گیتی زمان بماند تو بیرنگ با او بمان وگر زین جهان جوان رفته بگی چه نگه کن جاوی چیست چکاریم یک سرحن پیش من سری زیر تا جو سری زیر تر در اون هنگام یه دارد به یاد نیاورات که کاووس نونستار روی در گنج خود دارد که هر دردی را درمان میکند پس از گودرس میخواهد به شتاب خود را به خیمه و خرگاه کیکاووس رساند به او بگوید که رستم پهلوی پسرش را دریده است خدمات رستم را به یاد شاه ایران آورد و از او بخواهد که از آن دارو برای سهراب روبه مرد بفرستد شاید از چنگ مرگ رها شود و او هم چون پدر در خدمت پادشاه ایران باشد به گودرز گفتان زمان پهلوان هزی در بر و, برو، و برو زود روشن روان پیامی زمن سوگ کابوس بر بگویش که ما را چه به سر به دشنجه گرگاه پور دلیر دریدم که رستم موانات دیر یاد است من گر کن دل به تیمار من از آن نوش که در گنج توست کجا خستگان را کند درست به نزدیک من با یکی جام می سزد گر فرستی هم به پی مگر به وقت تو بهتر شود چون من تخت تو ت هدرشود او درز پیر چون باد خود را به خیمه پادشاه میرساند و پیام رستم را به او میدهد اما که كابوس كینتوز به او میگوید گرچه هیچکس بیشتر از رستم نزد من آبرو و ارزش ندارد اما اگر پشت رستم پسرش سحراب بار دیگر نیرو بگیرد در پی هلاک و مرگ من برخواهد آمد او به من بد کرده است و پاداشش جزبدی نیست او با آن یال و گوپال چنان مقرور است که در جهان نمی گنجد رسد با آن که در کنار تخت من بیستد به یاد نداری که می گفت که کابوس چیست و شحیاری از آن توسه است؟ از تیلتان کرا بیشتر آب از این انجبند شود پشت رستم به نیرو ترا حالا ها ورد بیگو مرمرا اگر یک زمان به من بد رسد نسازیم پاداش او به بد کجا گنجد در جهان فراخ به دانفر و آن برز و هن یال و شاخ کجا باشد او تیش تختم به پای کجا راند و زیر پر همای شنیدی که او گفت کاووز کیست؟ گر او است پس توز که ایست بشنید گودرز برگشت برای رستم آمد به کردار دود به نو دو گفت خوبی برشک یا درختیز جنگی همیشه ما تو را رفت باید بنستی که او درفشان کنید جان تاریخ او گودرز به رستم می گوید تو خود باید بنست که کابوس روی بر رستم چنین او در راه رفتن به خیمه که است که یکی از سپاهیان ایران خود را به او رسانده به وی آگاهی میدهد که صحراب در حالی که نام پدر را بر زبان نیاورد و او را می جان به جان فرین سپرده است و تنین فریاد رستم کوه و دشت و اردوگاه را می لرساند گفه پیتن سرسوی راه کرد کسامت آمد پسش زود آگاه کرد سهراب شد زین جهان فراخ است و تابوت خواهد نکاخ پدر و برزد یکی سر باد بنالید و مشگان به هم برنهاد به شتاب خود را به پیکر سحرابش میرساند یادی شد از اسب رستم چو باد به جای کلاه خاک بر سر نهاد همی گفت زارای نبرد جوان راز و از تخمه پهلوان نبیند چو تو نیز خورشید و ماه نه و نه جوشن نه تخت و کلاه. چرا آمدین پیش کامد مرا؟ بکشتم جوانی به پیران سرا نبیره جهاندار سام سوار سوی مادر از خهمه نامدار بریدن دو دستم سزا هست جز از خاک تیر مبادم نشنست که گوید تایه شمد مادر چگونه فرستم کسی را برش چگویم چرا کشتمش بیگنا چرا روز کردم برو او پدر من پدرمان مایه پهلوان چگوید مرا باز پور جوان ولین تخبه سام نفرین کنند همه نام من پیبه بیبین کنند که دانست که کودک عرش مرد به سال گردد تو سر بلند به جنگ دایدش رای و سازد سپاه به من بر روز روشن سیا سخراب را از دهشت ده بردوگاه می تا به سیستان برده شود رستم به خیمه خود باز می گردد. دستور میدهد خیمه و تخت و همه اسباب بزرگش را به آتش کشند سفاخیان ایران سودواری می کند. همه جا فریاد اندوه و درد شنیده می شود. رستم خون می با و و بزرگان ایران نیز هم پای اون عرش از آن دشت بردند تابوت اون سوی خیمه خیش بنهاد رو به پرده سرای آتش در زدند همه لشترش خاک بر سر زدند همان خیمه دیبه از رنگ رنگ همان تخت و پرمای زین پلنگ بر نهادند و برخاست او همی گفت زاره ای نو همی ریخت خون و همیشان خاک همه جامعه خسروی کرد چا همه پهلوانان کابوس شاه نشستند خاک با او براه آری. رستم ارزنده ترین دارائی خیش را به پای عظمت و سربلندی و آزادی و پایداری ایران قربان کرده است و پردوسی بزرگ مرسی خان چنین سوگی از برای قرون ما را پند و عبرت می دهد چنین است کردار چرخ بلند به دستی کلاه و به دیگر تو شادان نشیند کسی با کلاه به خم کمندش رو باید زگاه چرا می باید همی بر جهان به باید خرامید با هم رخان چون اندیشه گنج گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز اگر هست از این چهر را آگه همانا که گشته است مغزش تو هی چونان دان که از این گرد نیست ز چرخ بر این راه نیست بدین رفتن اکنون به باید ندانم که کارش به فرجان چی؟